تمام ظلمهایی که به سید و شهدا و یارانشون و خاندان محترمشون شد و تمام ظلمهایی که به امامان ما شد و تمام ظلمهایی که تا روز قیامت به جامعه بشریت می شود ریشه در هایی دارد که به فاطمه زهرا شد. ریشه در ظلمهایی دارد که سقفیه بر سر فاطمه زهرا آورد باید بدانی کربلا رهاورد و دستاورد ثقیفه است و ثقیفه مسیر انهرافی اسلام است و تنها کسی که در اینجا مواجه شد با ستمکاران صدیقه طاهره سلام الله علیها فاطمه زهرا یکتنه ایستاد خیلی هم خشكل ایستاد تمام ترفندهای دشمن رو بس به هم زد دشمن دانست علی مأمور به سکوته میدانست چون امتحان کرده بودن دیدن این علی و اون علی هر چی بهش بگین سرش پایینه فهمیدن باید راز و رمزی باشه گفتن امروز میره در خونه علی علی میاد پشت در با هم مواجه دیشین علی رو میکشید در اون همون نقشهی که برای پیغمبر کشیده بودن اون شب علی در بستر پیغمبر خوابید که قریش نتوانند اون نظر شومشونو پیاده بکنند امروز خاطمه رفت پشت در تا سقیفه نتواند اون نظر شومش رو پیاده بکنند این تحلیل تاریخ من روزه نمیخونم اگر از شما پرسیدن چرا فاطمه آمد بگید به خاطر که علی جای رسول الله خواهی باید رسول الله حفظ میشد اون روز علی حفظ کرد باید علی حفظ میشد فاطمه حفظ کرد دست دستشون رو دستشون میتونستن بکنن باید در خونه رو آتیش میزدن باید این کارا رو چون نقشه شومصریفه رو بر ملا کرد صدیقه طاهره همه ای اینها به خاطر مظالمی نیست که باز زهرا شده